بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به بحث گفتیم ان و اخواتش اسم رمان منسوب میگردانیدند و خبر را مرفوع ولی گاهی موقع اینا از عمل باز داشته می شوند کف و اخواتها ان الامل باز نگه داشتن ان و اخواتش از عمل الامثله اممثل ان حیاط وجیادون حیات جهاد اگر همین ما روی انند اومده بود چونین می شد ان حیاطه جیادون ولی این ما اومده روی ان نه و او را از عمل چکار کرده است بازگردانی است. پس در ترکیب چی میگویم میگویم ان از حروف مشببه است ولی از عمل باز داشته شده است چون مای کافه روش اومده است الحیاتو مبتدا و جهادون میشه چی بازش هم و هم عملا که مبتدا خبر میگه تاس... از نه، بحث عمل هست، بحث اعراب هست. ما کاری به معنا نداریم. بحث ما برای مثلا و کنزون انما تقاس همم الناس بالاعمال ببینید اینجا روی فعل اومده انما تقاس انما تقاس اگر به خوبی دقت بفرمایید اینجا ان روی چی, و... چی اومده است روی فعل وارد شده است در حالی که اگر این ما نمی بود اگر همین ما نمی بود به نظر شما آن موقع ما چی می گفتیم؟ اصلا نمیتونستیم روی فعل بیاریم اگر ما اینجا نمی بود چون اینا مختص اسمند مختص چه هستن؟ دوستانه که ترجیمهش معنیش کام برنده برای که ببینید مثلا ما ما از ببینید ببینید در درگیری شما روی چی هست تا من بفهمم لا معنا ما ما اینجا کاری به معنا نداریم ما اینجا اومدیم اعراب ای به شما یاد بدیم که آقا اگر ما رویش نمی بود می گفتیم لفظی معنا داره معنا شو از بین نبوده ما اصلا بحثمون من رو معنا نیست بحثمون من رو عمل است. حیات جوز نیست فقط جهال. بله خود تو چرا رو معنا رفتی ولی اینجا بحث اصلا معنا نیست. نه ایشون چیزی دیگه می داره میگه ایشون میگه که اگر همین ما اینجا نمی بود بیشتر گفتیم اسم این و خبر ان حالا که ما اومده میگیم مبتدا خبر ایشون رو معنا نرفته اصلا متوجه میشید؟ معنی نه ما که بیاید معنش همچنان هست ما که معنش اختلاف مثلا بله در معنش اختلافی نیست بحث روی اسم, اسم خبر بودن این نه هست روی اصلا عمل کردن چه هست این نه هست پس متوجه شدید داستان چه هست بله موقعی که میگیم این نه و اخواتش از عمل دست دارند. منظور چی هست بابا منظور عمل لفظی است منظور چی است کار به معنای واقعی خوب تو بین یعنی جمع همت هست همت دیدید که نه بعد از اینکه ما گوش اومده روی تو اومده است روی فیل پس ما که بیاد اینا عمل, عمل انجام نمیدند یعنی دیگه مرفوع و منصوبی ندارند در ترکیب میگوییم مبتدا و خبر ان ما نحنو مصلحون میگوییم اینه حرف ای که ملغا شده است از عمل ما مای کافه مای زاید نحلو مبتدا محلن مرفو چون مبنی است و زمیر زمیر هست و مبنی مسلحون هم خبر هست مرفو علامه طرف واف این ترکیبش بود ترکیب چنین هست بعد از اینکه که مای کافه بیاید ولی اگر شما دقیقی در امثله بفرمایید اگر دقیقی در چه بفرمایید در امثله بفرمایید, در امثله بفرمایید فقط ان بالییت رو آورده. علت این هست که بقیه مثل انانه هستند ولی لیتر داستانش جداست. لیتر داستانش یعنی اگر لط بعد از اینکه ما رویش بیاید می تواند عمل انجام دهد. می تواند چه انجام دهد؟ عمل انجام دهد و میتواند احمال شود و سرفیل نمی تواناند بیاید. سرفیل نمی تواند بیاید چون قدرتش ظاهراً از بقیه بیشتره با وجود ما یک کارایی میتونه انجام بده خب ده را مصالمون میتونیم بگیم لی تمددهرو مصالح جواز میشه آره هر دو حالت رو می توانیم بگیم القایده تا تصلو ما القایده به و اخواتیا فتکوفها عن الامل میگه مای زائده وصل میشه به اینه و اخواتش و اونها رو از عمل باز میدارد و توزیل و اختصاصها بالاسمه خاصیت بعدیش این است که اینها مخ... که مختصر اسمها بودن این خاصیت رو از بین میبره اختصاص بودن اینها که به اسم حسن اینو رو چه کار میکنه؟ توزیل می و زائل میگرداند بله دیکه الا لیته جز لیته فیجوز اعمالها و الغاؤها هم اعمالش جایزه هم الغائش ولا لا یزول اختصاصها بالاسماء بالاسما و مختص بودنش به اسما از بین نمیره مختص بودن لیتا بعد از اینکه که ما روش بیاید از اسما از بین نمیره طور که مختص ها قبل از ما بوده بعد از آمدن ما هم همون حالت رو داره آره خب این بود بحث برویم روی بحث بعدیمون که لای ناف